اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن بخشنده بخشایشگر الف لام را این آیات کتاب استوار و حکمت‌آمیز است. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر أن أنذر الناس وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق <تصفيق> عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آیا برای مردم موجب شگفتی بود که به مردی از آنها وحی فرستادیم که مردم را از عواقب کفر و گناه بترسان و به کسانی که ایمان آوردند بشارت ده که برای آنها سابقه نیک و پاداش های مسلم نزد پروردگارشان است اما کافران گفتند این مرد ساهر آشکار است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 افلا تذكرون. پروردگار شما خداوندیست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر کار جهان پرداخت هیچ شفاعت کننده ای جز با ازن او نیست این است خداوند پروردگار شما پس او را پرستش کنید آیا متذکر نمی شوید؟ ایلی مرجعكم جمیعا وعد الله حقا اینه یبدعو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنو وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما به سوی اوست خداوند وعده حقی فرموده او آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند به عدالت جزا دهد و برای کسانی که کافر شدند نوشیدنی از مایع سوزان است و عذابی دردناک به خاطر آنکه کفر می‌ورزیدند هو الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا, لتعلموا عَدَدَ السِّنِينَ والحساب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ او کسیست كه خرشید را روشنایی. و ماه را نور قرار داد و برای آن منزلگاههایی مقدر کرد تا عدد سالها و حساب کارها را بدانید خداوند این را جز به حق نیافریده او آیات خود را برای گروهی که اهل دانشند شرح می‌دهد. این نفی اختلاف اللیل و وما و خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم در آمد و شد شب و روز و آنکه خداوند در آسمان ها و زمین آفریده آیات و نشانههایی است. برای گروهی که پرهیزگارند و حقایق را میبینند این الذین لا یرجون لقاءنا و رضو بالحیات الدنیا و طمئنوا بها و بها والذین هم عن آیاتنا غافلون آنها که ایمان به ملاقات ما و روز رستاخیز ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما قافلند که بما كانوا همه آنها جایگاهشان آتش است به خاطر کارهایی که انجام می دادند. <متضیل> إن الذین منوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الأنهار فی جنات نعیم ولی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت میکند. از زیر قصرهای آنها در باغهای بهشت نهرها جاری است دعوام فیها سبحانک اللهم و فیها سلام و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوندا منزهی تو و تهیت آنها در آنجا سلام و آخرین سخنشان این است که حمد مخصوص خدا حرف واردگار است. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضيائهم يعمهون. اگر همان گونه که مردم در بیدست آوردن خوبیها عجله دارند. خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد به زودی عمرشان به پایان می رسید و همگی نابود می شدند. ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند به حال خود رها می کنیم تا در تقیانشان سرگردان شوند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرَ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَعِيدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی رسد ما را در هر حال در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است می‌خواند. اما هنگامی که ناراحتی را از او برطرف ساختیم چنان میرود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود نخوانده است این گونه برای اصرافکاران اعمالشان زینت داده شده است که زشتی این عمل را درک نمیکنند. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وَجَاءَتْهُمْ رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ وما كانوا ليؤمنوا ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ظلم کردند حلاک نمودیم در حالی که پیام دلایل روشن برای آنها آوردند ولی آنها ایمان نیا آوردند گونه گروه مجرمان را کیفر می ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَجْرُوَ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین پس از ایشان قرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید وَإِذَا أُتُوا ثَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربی عذاب یوم عظیم و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش را بردار بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیلوی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به فقد لبثت فیكم عمرا من قبله أفلا تعقلون بگو اگر خدا میخواست من این آیات را بر شما نمیخواندم و خداوند از آن آگاهتا نمیكرد چه اینکه ها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز ای نیاوردم آیا نمیفهمید فمن اظلم ممن افتری علی الله كذبا أو كذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون چه کسی ستم کارتر است از آن کس که بر خدا دروغ میبندد یا آیات او را تکزید می کند مجرمان رستگار نخواهند شد و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم و یقولون و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون آنها غیر از خدا چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرساند و نه سودی میبخشد و میگویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند بگو آیا خدا را به چیزی خبر میدهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد منزه است او و برتر است از آن همتایانی که قرار میدهند وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربک لقضی بینهم در آغاز همه مردم امت واهری بودند، سپس اختلاف کردند و اگر فرمانی از طرف پروردگارت درباره عدم مجازات سریع آنان از قبل صادر نشده بود، در میان آنها در آن که اختلاف داشتند داوری میشد و سپس همگی به مجازات می رسیدند. ویقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا، فانتظروا انی معكم من المنتظرين. می گوید چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو قیب و معجزات تنها برای خدا و به فرمان اوست شما در انتظار باشید من هم با شما در انتظارم شما در انتظار معجزات بهان جویانه باشید و من هم در انتظار مجازات شما وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم, اذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون پس از ناراحتی که به آنها رسیده است رحمتی به چشانیم در آیات ما نگرنگ میکنند و برای آن نعمت و رحمت توجیهات ناروا میکنند. بگو خداوند سریعتر از شما مکر میکند و رسولان ما آنچه نگرنگ میکنید و نقشه میکشید مینویسند. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت عاصف وجاهم. وجاءهم الموج من كل مكانه وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين دعوة الله مخلصين له الدين لإن جئتنا من هذه لئن این انام جای نامینهله نکنن اون نمیش او کسی که شما را در خشکی و در یاسیر میدهد. زمانی که در کشتی ها قرار میگیرید و آنها با بادهای موافق آنان را به سوی مقصد حرکت میدهند و خوشحال میشوند ناگهان. توفان شدیدی میوزد و امواج از هر سو به سراغ آنها میآید و گمان میکنند هلاک خواهند شد در آن هنگام خدا را از روی اخلاص می‌خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی حتما از سپاس سپاسگزاران خواهیم بود فلن من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 ثُمَّ إِلَيْنَا مرجعكم فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اما هنگامی که خدا آنها را رهایی بخشید باز به ناحق در زمین ستم می کنند ای مردم ستمهای شما به زیان خود شماست از زندگی دنیا بهره میبرید سپس بازگشت شما به سوی ماست و ما شما را به آنچه عمل می خبر می دهیم. إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إنزلَهُ من السماء فاختلط به فاختلط بهِ نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض أَهْلُهَا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلنا ما حصیدا که علم تغنبی الامس کذالک نفصل الالآیات لقومی یتفکرون مثل زندگی دنیا همانند آبیست که از آسمان نازل کرده ایم که در پی آن گیاهان گوناگون زمین که مردم و چهار پایان از آن میخورند میروید تا زمانی که زمین زیبایی خود را یافته و آراسته می‌گردد و اهل آن مطمئن می‌شوند که می‌توانند از آن بهره‌مند گردند ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز برای نابودی آن فرا میرسد سرما یا صاعقه ای را بر آن مسلط می‌سازیم و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز هرگز چون این کشت زاری نبوده است این گونه آیات خود را برای گروهی که میاندیشند شرح می دهیم و الله یدعو الى دار السلام و و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند و هر کس را بخواهد و شایسته و لایق ببیند به راه راست هدایت می نماید لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَ للذين أحسنوا أحسن الحسنى ودياده للذين أحسنوا الحسنى ودياده ولا يرحق وجوههم ولا يرهق وجوههم قتر و لا ولا, ولا يرهقوا جههم قت و لا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون کسانی که نیکی کردند پاداش نیک و افزون بر دارند و تاریکی و ذلت چهره هایشان را نمیپوشاند آنها اهل بهشتند و جاودان در آن خواهند ماند کسبوا السیئات جزاء بمثلها و ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اوشيت وجوههم قطعا من الليل المظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما كثاني كمرتكب گناهان شدند جزای بدی به مقدار آن دارند و ذلت و خاری چهرهی آنان را میپوشاند و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات خدا نگهدارد چهره هایشان آنچنان تاریک است که گویی با پاره هایی از شب تاریک صورت آنها پوشیده شده آنها اهل دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون به خاطر بیاورید روزی را که همه آنها را جمع می کنیم سپس به مشرکان میگوییم شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید تا به حسابتان رسیدگی شود سپس آنها را از هم جدا می سازیم و از هر یک جداگان سؤال می کنیم و معبودهایشان به آنها میگویند: شما هرگز ما را عبادت نمی کردید فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم این کنا عن عبادتكم لغافلین همین بس که خدا میان ما و شما گواه باشد به یقین ما از عبادت شما قافل بودیم هنا لك تبلو كل نفس ما اسلفت ورد الى الله مولاهم المحط وضل عنهم ما كانوا يفترون در آنجا هرکس عملی را که قبلا انجام داده است می آسماید و همگی به سوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده میشوند و چیزها را که به دروغ همتای خدا قرار داده بودند گم و نابود می شوند قل من یرزق من السماء والارض أم من یملك السمع والابصار و من یخرج الحی من الميت ویخرج و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقونون الله فقل افلا تتقون بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میدهد یا چه کسی مالک و خالق گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد و چه کسی امور جهان را تدبیر می کند به زودی در پاسخ می گویند خدا بگو پس چرا تقوا پیش نمی کنید و از خدا نمی تخصید الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الظلام فأنا تصرفون آن است خداوند پروردگار حق شما با این حال بعد از حق چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟ پس چرا از پرستش او روی گردان می شوید؟ كَذَلِكَ ربك كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يؤمنون. این چونین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها پس از این همه لجاجت و گناه ایمان نخواهند آورد. قل هل من شرکائیکم من یبدع الخلق ثم یعیده قل الله یبدع الخلق ثم یعیده لا تؤفكون بگو آیا هیچیک از معبودهای شما آفرینش را ایجاد می کند و سپس باز می گرداند بگو تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده سپس باز می گرداند با این حال چرا از حق روی گردان می شوید قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق قول الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي أَمَّن أم لَا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ آیا هیچ یک از معبودهای شما به سوی حق هدایت می کند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت می کند آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آنکس کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ و يتبع اكثرهم الا ظنلا، الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْأً، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. و بیشتر آنها جز از گمان و پندارهای بی اساس پیروی نمیکنند، در حالی که گمان هرگز انسان را از حق بینیاز نمی‌سازد و به حق نمیرساند. به یقین خداوند از آنچه انجام میدهند آگاه است. و ما کان هذا ولكن تصدیق الذي بین یدیه تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین شایسته نبود و امکان نداشت که این قرآن بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن است از کتب آسمانی و شرح و تفصیلی بر آنهاست شکی در آن نیست و از طرف پروردگار جهانیان است أم یقولون افتراه قل فأتو بسورة مثلی وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم, كنتم صادقین آیا آنها میگویند او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است بگو اگر راست میگویید یک سوره همانند آن بیاورید و غیر از خدا هر کس را میتوانید بیاری یاری بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ما تأویله تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمین ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند، بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند، و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است، پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند، پس بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود؟ ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به وربك اعلم بالمفسدین بعضی از آنها به آن ایمان میآورند و بعضی ایمان نمیآورند و پروردگارت به مفسدان آگاهتر است و آنها را بهتر میشناسد و این ك ذبو که فقلی عملی ولق اون عملوکن ان توداری اعمل نمییمم عملو و اننظری اونمت عملون و اگر تو را تکزیب بگو بگوعمل من برای من و عمل شما برای شماست. شما از آنچه من انجام میدهم بیزارید. و من نیز از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و منهم من یستمعون من الیک اف تسمع الصم ولو كانوا لا گروهی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند اما گویی هیچ نمی‌شنوند و کرند آیا تو میتوانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند و منهم من ينظر افأنت تهدی ولو كانوا لا گروهی از آنان به سوی تو می‌نگرند اما گویی هیچ نمی‌بینند آیا تو می‌توانی نابینایان را هدایت کنی هرچند نبینند اِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْخُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هیچ به مردم ستم نمی کند ولی این مردماند که به خیشتن ستم می کند. و یوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون, يتعارفون بینهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين یاد آبر روزی را که خداوند آنها را جمع و محشور می آنچنان که احساس میکنند گویی جز ساعتی از روز در دنیا توقف نکردند، به آن مقدار که یکدیگر را ببینند و بشناسند. مسلما آنها که لقای خداوند و روز رستاخیز را تکذیب کردند، زیان بردند و هدایت نیافتند. وإنما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفاهم لك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما اگر ما طاره از مجازات هایی را که به آنها وعده دادیم در حال حیات تو به تو نشان دهیم و یا پیش از آن گرفتار عذاب شوند تو را از دنیا ببریم در هر حال بازگشتشان به سوی ماست سپس خداوند بر آنچه آنها انجام میدادند گواه است و لیکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون برای هر امتی رسولی است. هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان آنها داوری می شود، و ستمی به آنها نخواهد شد. و هذا و می گویند اگر راست می این وعده کی خواهد بود؟ قل لا املك لنفسي ولا إلا ما شاء الله اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بگو من حتی برای خودم زیان و سودی را مالت نیستم تا چه رسد برای شما مگر آنچه خدا بخواهد این مقدار می‌دانم که برای هر قوم و ملتی سرآمدیست هنگامی که عجل آنها فرارسد و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود ساعتی تأخیر میکنند و نه پیشی میگیرند ان او نهارا ماذا منه المجرمون بگو به من خبر بدهید اگر مجازات او شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید آیا می توانید آن را از خود دفع کنید پس مجرمان برای چه عجله کنند؟ اثم اذا ما وقعتم به الان وقد كنتم سپس آیا آنگاه که واقع شد به آن ایمان می آورید به شما گفته می شود حالا در حالی که قبلا برای آن عجله می کردید اکنون چه سود؟ ثم اقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون سپس به کسانی که ستم کردند گفته می‌شود عذاب ابدی را بچشید آیا جز به آنچه انجام میدادید کیفر داده میشوید ویستنبئونك أحق هو قل ای وربی إنه لحق وما أنتم از تو میپرسند آیا آن وعدهٔ مجازات الهی حق است بگو آری به پروردگارم سوگند قتعا حق است و شما نمیتوانید از آن ورك ولو <تصفيق> أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسره الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وهركس ك ستم كرده اگر تمامی آنچه روی زمین است در اختیار داشته باشد همه را از حول عذاب برای نجات خیش می‌دهد و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمان می‌شوند اما پشیمانی خود را کتمان می‌کنند مبادا رسواتر شوند و در میان آنها به عدالت داوری شود و ستمی بر آنها نخواهد شد الا إن لله ما فی السماوات والأرض الا ئن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا علمون آگاه باشید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست آگاه باشید وعدهٔ خدا حق است ولی بیشتر آنها نمیداند. و یحیی و یمیت و اوست که زنده می کند و می, می راند و به سوی او بازگردانده میشود. يا <تصحیح> أيها الناس قد جاءتكم قد جاءتكم مواعظ من ربيكم و شفاء و شفاء لما فی الصدور و هدن و ای مردم اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان قل بفضل الله وبرحمته فبیلی که فلیت سراحون هو خاون مییمماگه معون بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ, فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ بِقُوْ بِمَنْ خَبَرْ بِلَهِيدْ آیا روزی ها را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترامی بندید و از پیش خود حلال و حرام می و ما غنن الذین يفترون على الله الكبیب يوم القیامة این الله لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشكرون. آنها که بر خدا افترامی بندند در باره مجازات روز رستاخیز چه می اندیشند خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد اما اکثر آنها سپاسگزاری نمی کنند وما تقولون في شأني وما تثنون منهم من قرآني ولا تعملون وَلَا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إد في ظن فيه وما يعزب عرب بك من مقال ذروتين في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا, أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. در هیچ حال و اندیشه ای نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام نمی دهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمیماند، حتی به اندازه سنگینی ذرهای و نه و نه بزرگتر از آن نیست مگر اینکه همه آنها در کتاب آشکار و لوح محفوظ علم خداوند ثبت است الا <العلى> این اولیاء الله لا خوف عليهم الا <الگه> این اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید دوستان و اولیاء خدا نه دارند و نهقگین میشوند الذين عمل وكقولون همانها که ایمان آوردند و از مخالفت فرمان خدا پرهیز می کردند. لهم لووم البشر في الحيا الدنيا وف الاخرا لا تبيل اللَّهِ ذَلِکَ الفوز العظيم. در زندگی دنیا و در آخرت شاد و مسرورند های الهی تخلف ناپذیر است این است آن رستگاری بزرگ ولا قولهم ان لله هو سخن آنها تو را نسازد تمام عزت و قدرت از آن خداست و او شنوا و داناست انا این لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکاء این یتبعون الظند و این هم الا آگاه باشید تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از آن خدا می باشند. و آنها که غیر خدا را همتای او می از منطق و دلیلی پیروی نمی کنند آنها فقط از پندار بیاساس پیروی میکنند و آنها فقط دروغ میگویند هو الذی جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا ان فی ذلك لآیات لقوم یسمعون او کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش بیابید و روز را روشنی بخش تا به تلاش زندگی پردازید در اینها نشانه است برای کسانی که گوش شنوا دارند قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات و ما في الارض این عندكم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است از هر عیب و نقص و احتیاجی منزه است او است از آن اوست آنچه در ها و آنچه در زمین است شما هیچ گونه دلیلی بر این ادعا ندارید آیا به خدا نسبتی میدهید که نمیدانید قل ان الذين على الله الكذب لا يفلحون. بگو آنها که به خدا دروغ میبندند هرگز رستگار نمیشوند متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بحر این چيز از دنیا دارند سپس بازگشتشان به سوی ماست و بعد به آنها مجازات شدید به سزای کفرشان می‌چشانی وتن عليهم نبأ نوح إذ قال لقوميه يا قوم يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا بَغْدًا ثم قدوا الي ولا تنظرون سرگذشت نوح را بر آنها بخوان در آن هنگام که به قوم خود گفت ای قوم من اگر تذکرات من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین و غیر قابل تحمل است هر کار از دستتان ساخته است بکنید من بر خدا توکل کرده ام فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند تمام جوانه به کارتان را بنگرید سپس به حیات من پایان دهید و لحظه ای ندهید اما توانایی ندارید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فما سَأَلْتُكُمْ من اجر. این اجریه الا علالله علال و امرتو ان اكون من المسلمین و اگر از قبول دعوتم روی بگردانید کار نادرستی کرده اید چه اینکه من از شما مزدی نمی مزد من تنها بر خداست و من معمورم که از مسلمین باشم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل لهم وجعل لهم خلاصا فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أما أن هؤلاء وما او و کسانی را که با او در تشتی بودند نجات دادیم و آنان را جانشین و وارث کافران قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند و به انذار الهی اهمیت ندادند چگونه بود؟ ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بهم من قبل كذلك نقبع على قلوب المعتدين سپس بعد از نوح رسولانی بسیار قومشان فرستادیم. آنان دلایل روشن برایشان آوردند اما آنها به چیزی که پیش از آن تکثیر کرده بودند ایمان نیاوردند این چونین بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم تا چیزی را درک نکنند زم مبعثنا من بعدهیم موسا وهارون هارون الی فرعون و ملئی الى فرعون و ملئهی بی آیاتنا فاستکبرو و بعد از آنها موسا و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم اما آنها تکبر کردند و زیر بار حق نرفتند چرا که آنها گروهی مجرم بودند فلما جاء الحق من عندنا قالوا، قالوا لسحر مبين. و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد گفتند این سفست آشکار، قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی گفت آیا درباره حق هنگامی که به سوی شما آمد چنین میگویید؟ آیا این سحر است در حالی که ساحران هرگز رستگار و پیروز نمی‌شوند قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين گفتند آیا آمده ای که ما را از آن چه پدرانمان را بر آن یافتیم منصرف سازی و بزرگی و ریاست در روی زمین از آن شما دوتن باشد؟ ما هرگز به شما ایمان نمی آوریم و قال ساحر فرعون گفت بروید و هر جادوگر و ساحر دانا را نزد من آورید فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ هنگامی که ساحران به میدان مبارزه آمدند موسی به آنها گفت آنچه از وسایل سحر را میتوانید به یختنید بگفت فلما أَلْقَوْ قال مُوسَى مَا جِبْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إن اللَّهَ سَيُبِقِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ هنگامی که افکندند موسا گفت آن که شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می کند چرا که خداوند هرگز عمل مفسدان را اصلاح نمی ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون او حق را به وعده خیش تحقق میبخشد هرچند مجرمان کراحت داشته باشند فما من لموسى إلا ذریة من قومی خوف على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين در آغاز هیچ کس به موسی ایمان نیاورد مگر گروهی از فرزندان قوم او آن هم با ترس از فرعون و اطرافیانش مبادا آنها را شکنجه کنند زیرا فرعون برتری جوئی در زمین داشت و از اسراف کاران بود وقال موسا یا قوم این کنتم آمنتون بالله فعليه توکلو این کنتم مسلمین موسی گفت ای قوم من اگر شما به خدا ایمان آورده اید بر او توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین گفتند تنها بر خدا توکل داریم پروردگارا ما را مورد شکنجه گروه ستمگر قرار مده و بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ من القوم الكافرين. و با رحمتت از دست قوم كافر رهایی داشت. و آوحينا إلى موسى و أخيه أن تبو و جعلو بیوتکم قبلتا و اقیم الصلاة و بشر المؤمنین و به موسا و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یک و متمركز قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده که سرانجام پیروز میشوند. و وقال موسی ربنا إنك آتیت فرعون و ملاهو زینه زینه و اموالا فی الحیات ربنا لیضلو عن سبیلک ربنا نقمیس على اموالهم واشدد على قلوبهم و على قلوبهم فلا یؤمنو حتى یرهو العذاب الالیم موسا گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی سرشار در زندگی دنیا داده ای پروردگارا در نتیجه بندگانت را از راه تو گمراه می سازند پروردگارا اموالشان را نابود کن و به جرم گناهانشان دلهایشان را سخت و سنگین ساز به گونه که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما فاستقی ما ولا تتبعن بسبیل الذین لا يعلمون. فرمود دعای شما پذیرفته شد استقامت بخرج دهید و از راه و رسم کسانی که نمیدانند دانند تبعیت نکنید وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فاتبعهم فرعون وجنوده بغيه وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت, آمنت به بنو إسرائیل وأنا من المسلمين سرانجام بنی إسرائیل را از دریا عبور دادیم و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند هنگامی که قرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین اما به او خطاب شد الان در حالی که قبلا اصیان کردی و از مفسدان بودی فالیوم ننجی که ببدن که لتکون لمن خلفک آیه و این لکثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون ولی امروز بدنت را از آب نجات میدهیم تا عبرتی برای آیندگان باشی و بسیاری از مردم از آیات ما قافلند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 سپس بنی اسرائیل را در جایگاه صدق و راستی منزل دادیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم اما آنها به نزا و اختلاف برخاستند و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد پروردگار تو روز قیامت در آنچه اختلاف کردند میان آنها داوری می کند فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلَّا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِكَ و اگر در آنچه تو نازل کرده این تردیدی داری از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می بپرس، به یقین حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين و از آنها مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زیانکاران خواهی بود ان الذين فقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بايدن آنها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته و به جرم اعمالشان توفیق هدایت را از آنها گرفته هرگز ایمان نمی آورند و لو جاءت هم کل آیت حتی یرون العذاب الالیم هرچند تمام آیات و نشانه های الهی به آنان برسد تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند زیرا تاریکی گناه قلبهایشان را فرا گرفته و راهی به روشنایی ندارند فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونسلم ما اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِذِی فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که ایمانشان به موقع باشد و به حالشان مفیل افتد مگر قوم یونوس، هنگامی که آنها ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدت معینی پایان زندگی و عجلشان آنها را بحرمن ساختیم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا انت تكره و اگر پروردگار تو میخواست تمام کسانی که روی زمین هستند همگی به اجبار ایمان می آوردند آیا تو میخواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند ایمان اجباری چه سودی دارد وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ویجعلو الرجس علی الذین لا یعقلون اما هیچکس نمیتواند ایمان بیاورد جز به فرمان خدا و توفیق و یاری و هدایت او و پلیده کفر و گناه را بر کسانی قرار میدهد كه نمیاندیشند قل انظروا ماذا فی السماوات والأرض و ما تغنی الآیات عن قوم لا يؤمنون بگو نگاه کنید چه چیز از آیات خدا و نشانه های در آسمان ها و زمین است اما این آیات و انظارها؟ به حال کسانی که به خاطر لجاجت ایمان نمی آورند مفید نخواهد بود فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين آیا آنها چیزی جز همانند روزهای پیشینیان و بلاها و مجازاتهایشان را انتظار میکشند بگو شما انتظار بکشید، من نیز با شما انتظار میکشم ثم ننجی رسلنا والذین منوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنين. سپس هنگام نزول بلا و مجازات فرستادگان خود و کسانی را که به آنان ایمان می آوردند، نجات می داریم. و همین گونه بر ما حق است که مؤمنان به نیز رهایی بخشیم قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبد الله الذي اتوفاكم وامرتم أن اكون من المؤمنين بگو ای مردم، اگر در عقیده من شک دارید من آنها که جز خدا میپرستید نمیپرستم تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می میراند و من مأمورم که از مؤمنان باشم و ان اقیم حنیفا تقولن من و به من دستور داده شده که روی خود را به آینی متوجه ساز که از هر گونه شرک خالی است و از مشرکان مباش. وَلَا تَدْعُ من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ و جز خدا چیزی را که نسودی به تو میرساند و و زیانی مخان که اگر چنین کنی از ستم کاران خواهی بود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 برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو رساند هیچ کس جز او آن را برطرف نمیسازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او آمرزنده و مهربان است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 حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده هرکس در پرتو آن هدایت یابد برای خود هدایت شده و هرکس کس گمراه گردد به زیان خود گمراه می گردد و من معمور به اجبار شما نیستم و الدمع ما یوحا إليك و اصبر حتى يحكم الله و, هو خیر و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکی با باش و استقامت نما تا خداوند فرمان پیروزی را صادر کند و او بهترین حاکمان است